عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچکه کتاب مقدس خوش اومدین. در ادامه بررسی عهد قدیم به کتاب اشعیا رسیدیم. آیا شما مسیحی هستین؟ آیا شما پر از روح هستین؟ آیا پر از روح قدوس خداوند هستین؟ بر چه چی چیزی تمرکز کردین؟ امروز ما حقایق مهمی از کلام خدا رو یاد خواهیم گرفت. حالا به دقت. به معلممون گوش میکنیم. ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید و همه شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید بیایید و شراب و شیره را بی نقره و بی قیمت بخرید. چرا نغره را برای آنچه نان نیست و مشقت قیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف میکنید. گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی متلزز شود. گوش خود را فرا داشته نزد من بیایید و تا جان شما زنده گردد بشنوید و من با شما عهد جاودانی یعنی رحمتهای امین داوود را خواهم بست اینک من او را برای توایف شاهد گردانیدم رئیس و حاکم توایف هان امتی را که نشناخته بودی دعوت خواهی نمود و امتی که تو را نشناخته بودند نزد تو خواهند دوید خاطر یهوه كه خدای تو است و قدوس اسرائیل که را تمجید نموده است خداوند را مادامی که یافت می شود و مادامی که نزدیک است او را بجوید شریر راه خود را و گناهکار افکار خیش را ترک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و بر وی رحمت خواهد نمود و به سوی خدای ما که مخبرت عظیم خواهد کرد زیرا خداوند می‌گوید که افکار من افکار شما نیست و تریخای شما تریخای من نیست زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است همچنان تاریخ‌های من از تاریخ‌های شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. و چنان که باران و برف از آسمان میبارد و به آنجا برنمی گردد بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور و برومند میسازد و برزگر را تخم و خورنده را نان میبخشد همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بیسمر نخواهد برگشت بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. زیرا که شما با شادمانی بیرون خواهید رفت و با سلامتی هدایت خواهید شد. کوها و تلها در حضور شما به شادی ترنم خواهند نمود و جمی درختان صحرا دستک خواهند زد به جای درخت خار سنوبر و به جای خس آس خواهد روید. و برای خداوند اسم آیت جاودانی که منقطع نشود خواهد بود در ادامه بررسی هامون به کتاب اولی نبی یا اشعیا رسیدیم متنی که براتون خوندم از اشعیا باب پنجا و پنج بود این باب نمونه یک موعظه باشکوه اشعیا رو به ما میده این باب همینطور به ما فلسفه خدمت و موعظه اشعیا رو نشون میده همونطور که قبلا گفتم اشعیا وایز بزرگی بود و به عنوان واعظ بزرگ او برای نیازهای اساسی التماس میکنه و یا تلاش انسانی رو پس میزنه. عیسی هم همین کار رو در عهد جدید میکنه. عیسی هم پیغامش رو به تشنگی و گرسنگی ربط میده. این کار یکش اشعیا کرده. آیا کسی تشنه هست؟ آیا کسی گرسنه هست؟ اگر امروز دنبال تغذیه هستید، بدونید که امروز براتون این امکان هست که بیش از حد تغذیه بشید و گرفتار سوء تغذیه نشید. وقتی شما کالری های بیشتری از چیزی که نیاز دارید دریافت می کنید، تمامی کالری های اضافی در بدنتون جمع میشه و گرفتار چاقی مفرت میشید وقتی شما بیش از حد چاق شدید این دلیل بر تغذیه خوب نیست چاقی میتونه به این معنی باشه که شما در خوردن افراد کردید و دچار سوء تغذیه شدید اشعیا بر این مورد در باب پنج تمرکز کرده او میپرسه آیا میدونید این امکان هست که غذا بخورید و اون به شما قوت نده اون شاید شما رو چاخ کنه اما شما رو قوی نمیکنه. من قضایی دارم که به جان شما قوت می بخشه. ما مایعاتی داریم که تشنگی حقیقی شما رو سیراب میکنه. اگر می‌خواهید تشنگیتون برطرف بشه و گرسنگیتون رفت بشه بیایید و پیغام ما رو بشنوید خداوند رو مادامی که نزدیک است بطلبید و بخوانید. این پیغام دعوتی است از طرف خدا که توسط اشعیا به ما میگه نزد من بیایید این دعوت رو مکررن در کتاب مقدس مشاهده میکنید اشعیا نصیحت میکنه خداوند رو بطلبید اشعیا این آیه اساسی رو که همه انبیا موعظه کردن موعظه میکنه اشعیا میگه که انسان باید توبه کنه و باید راههای شریرانش رو رها کنه و به سوی خدا بیاد او در این معزه وعده میده که خدا مقفرت عظیم خواهد کرد یعنی به فراوانی خواهد بخشید و خدا نیاز کسانی رو که او را بطلبند برابرده خواهد کرد تمامی انبیا در این پیغام اساسی کتاب مقدس با اشعیا همراه هستند وقتی اشعیا این پیغام بزرگ را موعظه میکنه نقش کلام خدا رو در خدمت یک نبی به نمایش می زر. محور اساسی فلسفه معایزه اشعیا کلام خدا بود یادتون هست که گفتم انبیا در مقابل کلام مکتوب خدا می و اون رو برای مردم باز میکردند. تمامی انبیا کلام مکتوب خدا رو که توسط موسی به مردم داده شده موعظه کردن. این کلام خداست که اشعیا در باب و پنج از اون صحبت میکنه و میگه جمع کردن خدا و انسان در یک جا مشکل بزرگی هست. اگه شما میخواهید به حضور خدا بیایید و خدا رو به بطلبید مشکل شما چیه؟ خب مشکل اینه. خدا خداست و شما انسانی. خدا مثل شما فکر نمیکنه و مثل شما عمل نمیکنه. در واقع فاصله زیادی بین افکار خدا و افکار شما هست و فاصله زیادی بین اعمال خدا و اعمال شما هست. دقیقا، همون اندازه‌ای که آسمان‌ها از زمین فاصله دارن. حالا شما چطور میتونید توازنی بین افکار خدا و افکار انسان به وجود بیارید؟ چطور میتونید در مورد رفتار خدا و رفتار انسان توازنی به وجود بیارید؟ اشعیا به ما میگه که این مهمترین وظیفه کلام خدا هست. در معزه اشعیا یک حقیقت بنیادی هست. راه های خداوند راه‌های شما نیست. افکار خداوند افکار شما نیست. به این دلیل که سلیمان در امثال 24-20 میپرسه قدم های انسان از خداوند است. پس مرد راه خود را چگونه بفهمد. اگر خدا مانند انسان عمل نمی‌کنه و مثل انسان فکر نمی‌کنه و من راه او را میخوام و اراده او را میطلبم، نباید همیشه توقع داشته باشم راههایی رو که اون مرا در آن هدایت میکنه درک کنم چون که خدا به من هشدار داده که مثل من فکر نمیکنه و مثل من عمل نمیکنه. کلام خدا ابزار زیبایی در دست نبی هست که به وسیله اون خدا توازنی بین افکار انسان و افکار خدا ایجاد میکنه. ارزش انسانی و ارزش خدایی در اون فایش به ما میگه که، او در مورد کلام خدا چی فکر کنه؟ او میگه کلام خدا مثل باران و برف هست که از آسمان میباره تا اینکه در روی زمین سمری به بار میاره. اشعیا در این موعظه تقریبا یک دوره دانشگاهی رو در مورد کلام خدا برگزار کنه. او میگه وقتی کلام خدا رو موعظه کنید کلام خدا همیشه اهداف مورد نظر اون کلام رو به انجام میرسونه. کلام خدا همیشه ثمراتی به بار میاره و اگر وقتی شما کلام خدا رو موعظه کنید مردم به اون پاسخ بدن کلام خدا انسان و خدا رو یک جا جمع میکنه. کلام خدا توازنی بین انسان و خدا به وجود میاره. حالا وقتی این اتفاق میافته، اشعیا میگه شما برکت عظیمی خواهید یافت. و با شادمانی بیرون خواهید رفت و با سلامتی هدایت خواهید شد و آرامش رو تجربه خواهید کرد. و مسماره سمر بودن رو که کتاب مقدس بیش از هر چیزی در موردش صحبت میکنه تجربه خواهید کرد. اشعیا این رو یک موعظه میخونه. اشعیا به وسیله فلسفه موعظه و خدمتش به ما بسیرت میده. من نمیخوام زیاد وارد دیدگاه تاریخی بشم اما میخوام یک دیدگاه مختصر تاریخی به شما بدم که کمک میکنه این نوشته نبوتی رو درک کنید. وقتی که این کتابهای نبوتی رو میخونید متوجه میشید که بسیاری از اونها درست در همون اول بعضی واقعیت های تاریخی رو به شما ارائه میدن. روشی که معمولا اونها این دیدگاه رو به شما میدن اینه که میگن کدام پادشاه هم اصر با اون نبی بوده و این یک روش کتاب مقدسی متداول در عهد قدیم و عهد جدید بوده که دیدگاه تاریخی به ما میده، گاهی اولین آیه کتاب نبوتی اطلاعات تاریخی به ما میده، اگرچه بعضی از کتاب‌ها هم اینطوری شروع نمیشن. اولین آیه از کتاب یونس هیچ اطلاعات تاریخی به ما نمیده، وقتی که کتاب نبوتی با اطلاعاتی تاریخی شروع میشه مفهومش اینه که این دیدگاه تاریخی نقش مهمی در مورد پیام اون نبی داره به این دلیل که اطلاعات تاریخی داده میشه این مهمه که شما بدونید وقتی اون نبی موعظه می کرد در دوره کدوم پادشاه بوده تا اینکه بتونید درک کنید اون نبی چه ای کرده در کتابی مثل یونس اگر اطلاعات تاریخی نیست به این دلیل که پیغام این نبی هیچ ربطی به شرایط تاریخی اون دوره نداشته پیغام کتاب در خود کتاب نهفته است و شرایط تاریخی اهمیتی نداره. در کتاب اشعیا در همون آیات ابتدایی گفته شده که اشعیا معاصر با پادشاهانی چون اوزیا و یوتام و آهاز و هزقیا و بلاخره مناسی بوده. به این ترتیب ما میتونیم بفهمیم که اشعیا شاید حدود 60 سال موعظه میکنه چون که از طول مدت حکومت این پادشاهان متوجه این مطلب میشیم. وقتی اشعیا در زمان حکومت اوزیا موعظه میکرد، پادشاهی اسرائیل در اوج شکوفایی بود. اوزایا قبل از سقوط پادشاهی حکومت می کرد و پادشاه موفق و کامیابی بود. او مرد خوبی بود و خدا او رو برکت داد. در دوران او همه چیز در اوج خودش بود. پس چیزی که اشعیا در این دوره موعظه کنه شما میتونید انتظار داشته باشید که او به قومی مرفه موعظه کنه این در آغاز خدمت اشعیا بود. قسمت اعظم خدمت اشعیا در دوره پادشاهی اوزایا نبود. اشعیا تجربیات روحانی خودش رو زمانی داشت که مرد. از اونجایی که اون تجربیات باعث شروع خدمت نبوت اشعیا شد، بزرگترین خدمت موعظه اشعیا بعد از این دوره شروع میشه. پادشاه بعدی که اشعیا در زمان او مععزه کرد، آهاز بود. آهاز پادشاه شریری بود. دوم تواریخ بیست شرایط دوران حکومت آهاز رو توضیح میده. سومین دوره که اشعیا بیشترین مععزه های خودش رو کرده در زمان پادشاهی هزقیا بود. هزقیا پادشاه خوبی بود. در زمان حکومت او اشعیا درخشان ترین لحظاتش رو داشت این زمانی بود که اشعیا بزرگترین موعظه را رو کرد بیش از هر کتاب نبوتی دیگه‌ای در کتاب اشعیا نبوتهای مسیحایی هست بیش از هر نبی دیگری در عهد جدید به اشعیا اشاره شده و به های او اشاره شده و از های او نقل قول شده وقتی که کتاب اشعیا رو می‌خونید به نبوتهای مسیحایی در موعظه او توجه کنید در کتاب اشعیا آیات زیادی رو خواهید دید که با اونها آشنا هستید چون بسیاری از این آیات رو در شاهکار شاهکارهای موسیقی مسیحی ای با بسیاری از اونها آشنا هستید مثلا در اشعیا شما نبوتی در رابطه با نام هایی که مسیح با آنها خونده خواهد شد می‌بینید نام او عجیب خواهد بود مشیر خدای قدیر پدر سرمدی شاهزاده سر، امانوئیل خدا با ما خواهد بود این اسامی مسیح مؤکدًا نشون میده که مسیح خدا در جسم انسان خواهد بود. خدا با ما یکی از عناوین او خدای قدیر خواهد بود. در این نبوت مسیحایی اشعیا همچنین چیز دیگه ای به ما میگه که وقتی مسیح میاد توسط او اظهار خواهد شد. این یکی از نبوت‌های مسیحی مورد علاقه من در این کتاب است. نهالی از تنه بیرون آمده شاخه‌ای از ریشههایش خواهد شکفت و روح خداوند برو قرار خواهد گرفت این یکی از نبوتهای مسیحایی مورد علاقه من در این کتاب هست نهالی از تنه یسا بیرون آمده شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر برو قرار خواهد گرفت یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند در کتاب مکاشفه به عنوان هفت روح خدا به این اشاره شده وقتی که کتاب مکاشفه رو میخونید خواهید فهمید که چرا. مترجمین و کسانی که کتاب مقدس رو گردآوری کردند این کتاب رو در انتهای کتاب مقدس قرار دادند وقتی که مردم تازه به مسیح ایمان میارند و علاقمند هستند که کتاب مقدس رو بخونن، اونها مکررن میگن بیاید مکاشفات رو بخونیم و مکاشفه رو مکاشفات میگن و این نشون میده که اونها حتی اولین جمله کتاب مکاشفه رو هم نخوندند که میگه مکاشفه عیسی مسیح فقط یک مکاشفه هست، نه مکاشفات. هرگز اون را به صورت جمع یا مکاشفات عنوان نکنید. چون در اون صورت مردم خواهند فهمید که شما حتی یک بار همین کتاب رو نخوندید. یکی از دلایلی که در کتاب مکاشفه سخته اینه که این کتاب به صورت رمزی نوشته شده و هر نمادی در مکاشفه یک نماد کتاب مقدسی هست. هر نمادی در کتاب مکاشفه در جای دیگری از کتاب مقدس وجود داره بنابراین لازمه درک این زبان سمبولی که کتاب مکاشفه، اینه که کتاب پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و دیگر کتاب کتاب مقدس رو بخونیم. به این دلیل که مکاشفه در آخر کتاب قرار گرفته، چون برای درک مکاشفه شما باید اطلاعات کاملی از کتاب مقدس داشته باشید. در مکاشفه باب چهار و پنج وقتی دری در آسمان گشوده میشه، شما این جمله رو میشنوید. هفت روح خدا در باب چهار وقتی دری در آسمان گشوده میشه اونجا تختی هست و در مقابل تخت هفت چراغ وجود داره که گفته شده هفت روح خدا هستند. در باب پنج کتاب مکاشفه ما در مورد می میخونیم که به نظر میرسه زب شده و روی تخت نشسته. بره هفت شاخ و هفت چشم داره که گفته شده هفت روح خدا هستند که به تمام جهان فرستاده میشن. در زبان سمبولیک کتاب مکاشفه و نوشتجات مربوط به مکاشفه در هزقیال و دانیال شاخها علامت قدرت هستند و چشمها علامت حکمت. پس چیزی که این زبان سمبولیک در کتاب مکاشفه میگه اینه. این برده که به نظر میرسه زب شده که مشخصا به مسیح اشاره میکنه نماد کاملی از قدرت و حکمت خداست. در کتاب مقدس عدد هفت عدد تمامیت یا کمال هست. بنابراین سمبولیزم در مکاشفه باب چهار و پنج به این نتیجه میرسه قدرت کامل خدا و حکمت کامل خدا زمانی نشون داده میشه که بره به دنیا رفت و در آنجا زب شد. دعای نخست باب یازده همه را رو به دقت بخونید و اونها رو با زبان سمبولیک بابهای چهار و پنج مکاشفه مقایسه کنید. هر دو متن به هفت روح خدا اشاره میکنن. حالا این هفت روح خدا چی هستند؟ بسیاری از محققین اعتقاد دارند که 4 و پنج تفسیر نمادین و کاربردی نبوت اشعیا هست که در باب 11 آیات یک و دو آمده. وقتی که اشعیا درباره آمدن ها میگه، چیزی که میگه دقیقاً اینه: مسیح موعود پر از روح خدا خواهد بود. مسیح روح خدا رو نشون خواهد داد و جوهر روحانی خدا رو به هفت روش عرضه خواهد کرد. توسط زندگی او روح معرفت خواهد آمد. روح درک، روح حکمت، روح مشورت، روح قدرت، روح پرستش و روح خداوند. حالا یه دقیقه به این فکر کنید. شما چه برداشتی از ایسای مسیح دارید؟ نمیدونم چقدر چه چهار انجیل رو خوندید، اما وقتی اناجیل یا های عیسی را بخونید، چه نوع تصویر ذهنی از عیسی خواهید داشت؟ از او چه برداشتی خواهید داشت؟ خب بر اساس اشعیا او این گونه خواهد بود. او منبع کامل روحانی خدا خواهد بود. ببین معنی که او روح معرفت و درک رو نشون خواهد داد کلام خدا رو به خوبی خواهد دانست کلام خدا رو درک خواهد کرد و اشعیا میگه او روح حکمت خواهد داشت روح حکمت یعنی کاربرد معرفت به نابه گفتی اشعیا مسیح میدونه که چطور کلام خدا رو در شرایط واقعی زندگی به کار بگیره و به این ترتیب او به دیگران هم نشون خواهد داد که چطور کلام خدا رو در زندگی هاشون به کار بگیرن به این ترتیب روح مشورت رو به نمایش میذاره و به عنوان مسیح او این دیدگاه رو با مردم در روح مشورت در میون میذاره. این حرکتی خواهد بود که زندگی ها رو تغییر خواهد داد. بدین معنی که مسیح روح قدرت و اقتدار رو به نمایش خواهد گذاشت و بعدش آیا نبوت میکنه که مسیح روح پرستش خواهد داشت. به گفته ایش آیا تمامی اینها نمایشی از روح واحد خدا در مسیح در هفت جنبه خواهد دان. در طول زندگیم شاهد بودم که علاقمندی به موضوع عطایای روح القدس در حال تجدید شدن بوده. در چهاردهه گذشته قرن بیست و یک, یک علاقه و بیداری در موضوع اطایه روح وجود داشته. در زبان اصلی عهد جدید کلمه کاریزما کلمه است که عطایای روح القدس رو توصیف میکنه. بدین معنی که روح خودش را رو با دادن عطایایی به قوم خدا نشون میده. وقتی امروز ما از روح القدس بحث می کنیم، وقتی تجربیات خودمون رو از روح القدس تفسیر کنیم، خیلی ها تقسیم بندی هایی به وجود میارن که مردم رو به اشتباه میندازن چون که بسیاری از مردم در روش اشاره به خدمت روح القدس دوچار اشتباهاتی میشن مثلا طاله این جمله رو شنیدید که میگن فلان مسیحی پر از روحه مردم اغلب از من پرسن آیا شما پر از روح هستید و من بعد از اینکه فکر می‌کنم میدونید چه پاسخی میدم من اینطور پاسخ میدم همیشه نه شما چطور چون ببینید این جمله معنیش اینه که دو نوع ایماندار داریم ایمانداران پر از روح و بعد ایماندارانی که هیچ وقت از روح پر نمیشن آیا این چیزیه که کتاب مقدس وقتی به پر شدن از روح اشاره میکنه ازش صحبت میکنه به تمامی ایمانداران در کتاب مقدس فرمان داده شده که از روح پر بشن امیدوارم که همه ما بخواهیم پر از روح بشیم اما معنی پر شدن از روح چیه؟ در کتاب اعمال رسولان گفته شده که پتروس پر از روح شده و در روز پنتیکاست اون موعظه عظیم رو کرده و بعد باز میخونیم که پتروس پر از روح شده و دوباره موعظه کرده و هزاران نفر نجات یافتند و بازم بعد میخونیم که پتروس پر از روح شده این کار رو و اون کارو کرده. حالا در بین اون زمانها که کتاب مقدس میگه پتروس پر از روح شد آیا او باز هم پر از روح بوده؟ قوله رسول فرمانی در افسوسیان 5:18 میده و اینطور میگه مست شراب مشوید که در آن فجور است بلکه از روح پر شوید عملاً چیزی که او گفته این هست. تحت تاثیر الکل که نابود کننده هست قرار نگیرید بلکه تحت تاثیر روح قرار گیرید ببینید روح القدس یک شخصه و شما یا شخص روح القدس را رو دارید یا ندارید امروز چیزی داریم که بهش الهیات آبکی میگیم وقتی ما از پر شدن از روح صحبت می کنیم به یک لیوان فکر می کنیم که شاید یک سومش پر باشه یا نصفش پر باشه یا دو سومش هرچی کتاب مقدس وقتی از پر شدن از روح صحبت می کنه این نیست روح آب نیست او یک مایه نیست او یک شخصه شما یا او رو دارید یا ندارید مسئله واقعی نیست که شما چقدر روح دارید مسئله اینه که چه مقدار از وجود شما روح داره وقتی روح وارد زندگی شما میشه سوال عمده اینه او چه مقدار از زندگی شما رو داره؟ وقتی او ی وجود شما رو داره شما پر از روح هستید. شخصی که پر از روح هست کسیه که در کنترل روحه همونطور که یک شخص مست تحت تاثیر الکل هست باید شما هم تحت تاثیر روحالقدس القدس باشید. معنی پر شدن از روح اینه. سوال دیگه اینه اگر شما کلیسایی پر از روح دارید و یا شما ایمانداری پر از روح هستید، کلیسای شما، و یا خود شما چه شکلی هستید؟ علائم پرشدن از روح چیه؟ شخص پر از روح چه شکلیه؟ خب اینجا باز فکر کنم که ما اشتباهات زیادی داریم چون که ما میگیم شخص پر از روح به زبانها صحبت میکنه شخص پر از روح نبوت میکنه شخص پر از روح به شکل خاصی پرستش میکنه و این معنی پرشدن از روحه. باز هم میگم این چیزی نیست که کتاب مقدس به ما تعلیم میده. هیچ کدوم از ما نباید از پر شدن از روح بترسیم. میدونید چرا؟ اگر ما پر از روح بشیم اگر قطعاً با روح خدا کنترل بشیم اگر ما جوهر خدا رو در روح نشون بدیم ما دقیقاً شبیه مسیح خواهیم بود عیسی مسیح صد درصد با روح خدا کنترل میشد او در تمام اوقات صد درصد پر از روح بود او شبیه چی بود او تجلی کاملی از حکمت، قدرت و روح خدا بود او چه نوع انسانی بود آیا او پر از روح بود چون به زبانها صحبت میکرد یا چون به فرم خاصی پرستش میکرد؟ نه. عیسی پر از روح بود، در کنترل روح بود چون روح معرفت داشت، روح حکمت داشت، روح مشورت داشت، روح قدرت داشت، روح پرستش داشت. او پرستش رو دوست داشت. این جنبه مورد علاقه او از روح بود. تمامی این نشانه های روح خدا، نشانه های هفتگانه در زندگی عیسی مسیح مشاهده می شود. در اشعیا یازده ما تصویر زیبایی داریم که مسیح در روح چگونه خواهد بود و این چیزی که من و شما باید در طول روز و هر روز اونطور باشیم. کلمه مسیحی یعنی کسی که شبیه مسیحه. اگر ما بخوایم شبیه مسیح بشیم، باید مثل او در تمامی اوقات پر از روح باشیم. در اشعیا باب چهل ما نبوت مسیح های زیبای دیگری میبینیم. او اینطور میگه، گوش کنید در بیابان صدای راه خداوند را محیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید، هر درهی برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد، و کجیها راست و ناهمواریها هموار خواهد گردید و جلال خداوند مکشوف گشته تمامی بشر آن را با هم دید زیرا که دهان خداوند این را گفته است. وقتی یحیای تمید دهنده که به گفته عیسی بزرگترین نبی بود شروع به معزه کرد، همین موعظهش عیا را میکرد در باب سوم لغوی یحیای تعمید دهنده اینطور این موعظه کرد چنانچه مکتوب است در صحیفه کلماتش ایای نبی که میگوید صدای ندا ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طریق او را راست نمایید هر وادی ام باشته و هر کوه و تلی تل پست و هر کجی راست و هر ناهموار صاف خواهد شد و تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید این یکی از بزرگترین های اشعیا هست. اشعیا میگفت که خدا در شخص پسرش مسیح به این جهان خواهد آمد. او این رو به شاهی تشبیه کرده که به سفر میره. اگر یک شاه بخواد که به یک دهکده دور سفر کنه، باید برای او بزرگراهی بسازند که از اون راه به دهکده سفر کنه. به اون بزرگراه پادشاهی میگفتن. وقتی شما میخواهید جاده بسازید، چهار کار انجام میدید. تپه رو صاف میکنید. در راه رو پر می کنید، نه ها رو هموار می کنید و کجی ها رو راست می کنید و اون موقع میتونید یک بزرگ راه داشته باشید اشعیا این تمثیل روزمره رو به کار میبره و میگه خدا میخواد به این جهان سفر کنه، اما لازمه که براش راهی ساخته بشه. بزرگ راهی که شاه توسط اون وارد این جهان میشه زندگی پسر خودش هست. زندگی پسر خدا طوری خواهد بود که بتوان گفت کوه غرور صاف میشه، درههای خلب و کمبودها پر خواهد شد، جاهای کج گناه راست خواهد شد و واکنش پسر خدا به نقاط ناهموار چنان خواهد بود که اون نقاط هموار خواهند شد. به این ترتیب شاهراهی خواهد بود که خدا توسط اون بتونه وارد این جهان بشه و تمامی جهان جلال او رو توسط این شاهراه خواهند دید. توسط این زندگی عالی وقتی یحییای تامی دهنده موازیش رو میکرد این طور گفت: وقتی این شاهراه ساخته بشه تمامی بشر نجات خدا رو خواهند دید. باز هم میگم ما قرار هست که شبیه مسیح بشیم. معنی کلمه مسیحی دقیقا همینه. وقتی عیسی این صحنه زمینی رو ترک میکرد به شاگردانش گفت همونطور که پدر مرا به این جهان فرستاد من هم شما را به این جهان میفرستم. دقیقا همونطور که من آمدم شما رو میفرستم. زندگی عیسی شاهراهی برای خدا بود. زندگی من و شما هم قرار شاهراهی برای خدا باشه. شما رو تشویق می کنم که این دعا رو بکنید. خداوندا زندگی مرا شاهراهی بساز که به وسیله اون بتونی وارد این جهان بشی. وقتی این دعا رو بکنید تعجب نکنید اگر بلدزرهای روحانی خدا در روز دوشنبه به صحنه بیان و شروع کنن به صاف کردن تپه های شما، پر کردن راه های شما و راست کردن نقاط کج شما و هموار کردن نقاط ناهموار شما. تعجب نکنید چون این چیزی که شما درخواست کردید. خدا چطور میتونه زندگی شما رو شاهراهی بکنه که توسط اون وارد این جهان بشه؟ خب بر اساس بزرگش بزرگ اشعیا این آسون نیست. چون که اون شامل این چهار مرحله هست. صاف کردن، پر کردن، راست کردن و هموار کردن. این مععزه بسیار بسیار زیبایی هست. مععزه باشکوه دیگری از اشعیا رو در باب شسته یک اشعیا میبینیم این نبوتی مسیحایی هست مربوط به خدمت عمومی عیسی وقتی عیسی شروع به سه سال خدمت عمومی خودش کرد او با یک بیانیه شروع کرد محققین به اون بیانیه ناصره میگن این بیانیه در باب چهار کتاب لوقا آیات 17 تا 19 ثبت شده حساب معبد شهر زادگاهش رفت و تومارش ایای نبی رو خواست او تومار رو تا آخر باز کرد و این کلام رو خوند روح خداوند بر من است او مرا محض کرده است تا به بینوایان مجده دهم مرا فرستاده است تا آزادی اسیران از و بینایی کوران و رهایی ستمدیدگان را اعلام کنم و سال فرقنده خداوند را اعلام نمایم. اگر نبوت اشعیا در باب 61 را با سخنان خداوند در لوقا چهار مقایسه کنید، متوجه میشید که او در وسط جمله توقف کرد. آیا ادامه پیدا میکنه و میگه و از جم انتقام خدای ما، ندان مایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم، ایسا اون بخش از آیه رو نخوند، چون اون قسمت از آیه مربوط به ظهور سانویه ایسا بود. مسیح دوباره بر خواهد گشت و از همه دشمنان خدا انتقام خواهد گرفت، اما نه در ظهور اولش. ایسا در وسط اون آیه توقف کرد و تومار رو به خادم کنیسه سپرد و گفت، امروز این نوشته وقتی که با آن گوش می کردید، جامعه عمل پوشید. چیزی که عیسی اعلام میکرد این بود روح خداوند بر من است مرا مس کرده تا برای فقیران و مسکینان موعظه کنم این فقیرانی که عیسی از اونها صحبت میکرد، از این لحاظ فقیر بودند که کور بودند کوری اونها به این معنی بود که اونها دست چپشون رو از دست راستشون تشخیص نمیدادند. اونها چیزی نمیدونستند. اونها همینطور از این لحاظ فقیر بودند که اسیر بودند به این معنی که آزاد نبودند و از این لحاظ فقیر بودند که دل شکسته بودند عیسیا شکست دلان رو دعوت میکنه او در کنیسه شهر زادگاهش اعلام کرد خدمت من برای کوران، اسیران، شکست دلان، کوبیدگان و مردم فقیر است وقتی من بشارتم را به این مردمان کور و اسیر و شکست دل اعلام میکنم کوران خواهند دید، اسیران آزاد خواهند شد و شکست دلان شفا خواهند یافت با اعلام اون بیانیه بزرگ عیسی خدمت عمومی خودش را آغاز کرد بیانیه ناصره شبکه زیبایی است که توسط اون شما میتونید خدمت عیسی مسیح رو در هر چهار انجیل مخصوصا در انجیل لوقا ملاحظه کنید. وقتی عیسی می‌خواست بیانیه‌ای صادر کنه که توضیح بده او چه کسی هست و چیکار میخواد بکنه، او هم مثل یحیای تعمید دهنده از موعظه اشعیا استفاده کرد. وقتی که چهار انجیل رو می‌خونید، ملاحظه کنید که عیسی بعد از اون بیانیه در طی سه سال چه کارهایی انجام داد. او کوران رو بینا کرد. عیسی عملا کوران جسمانی رو شفا داد، اگرچه توسط خدمت تعلیمش به کسانی که از نظر روحانی کور بودند، بینایی روحانی عطا کرد. او بارها فریاد برمیآورد چون مردم مانند گوسفندانی بودند که چپ را از راست تشخیص نمیدادند این خدمت تعلیم او بود. توسط خدمت او که امروز به اون خدمت مشورت میگیم او اسیران از رو آزاد کرد. او نمیتونست از کنار کسانی که آزاد نبودن بی تفاوت عبور کنه. او به اسیرانی که اونها رو رهبری میکرد، وعده میداد که اگر از او پیروی کنن، حقیقت اونها رو آزاد خواهد کرد. زندگی سخته. زندگی خیلی سخته. زندگی خیلی ها رو دلشکسته و مجروح میکنه. عیسی نسبت به شکست دلان و کوبیدگان این دنیا شفقت زیادی داشت. در بیانیه ناصره، عیسی اعلام کرد که حامل پیغامی هست. و خدمت و معموریتی داره که متوجه شکست دلان و کوبیدگان هست. همونطور که اناجیل رو میخونید، ملاحظه کنید که عیسی نبوتی رو که در اشعیا بیان شده و انجام میرسونه. باب شسته یک کتاب اشعیا نمای زیبایی از خدمات عمومی عیسی هست. در آغاز خدمت عیسی او بیانیش رو اعلام کرد و بعد از اون سه سال برای انجام اون در دنیا وقت صرف کرد. کاربرد عملی این بیانیه بزرگ که در اشعیان بوت شده و توسط عیسی مسیح به انجام رسیده برای من و شما چیه خب اولا اگر شما نابینا هستید اگر نمیدونید چیکار کنید به این معنی که دست راست و چپتون رو تشخیص نمیدید اگر اسیر هستید اگر آزاد نیستید اگر دل شکسته اید اگر فشارهای زندگی شما را در هم شکسته پس شادی کنید چون که خدمت عیسی مسیح برای شما هست. عیسی گفت که خدمت او برای کسانی مانند شماست. اشعیا نبوت کرده که خدمت عیسی برای اشخاصی مثل من و شما خواهد بود. وقتی که وارد این جهان میشید و با مردم مرابده میکنید، نبوت اشعیا و خدمت عیسی را به یاد داشته باشید. از خودتون بپرسید آیا اونها کورند؟ آیا اسیرند؟ آیا دل شکستند؟ مسیحی که درون شماست میخواد که در زندگی اونها خدمت کنه. درست همونطور که او وقتی بر روی زمین بود خدمت میکرد. امروز میخواد اون خدمت رو توسط شما انجام بده. دوستان آیا چشمان روحانی شما باز شده؟ دایما اینه که این درس ها به شما کمک کنه و چشمان روحانی شما رو باز کنه تا بتونید کلام او رو درک کنید و در زندگیتون به کار بگیرید. خداوند نقشه برای زندگی شما داره. او میخواد کوران روحانی بینا بشن. اسیران از روحانی آزاد بشن و شکست دلان شفا پیدا کنن اگر تا کنون به او ایمان نیاوردین از شما میخوایم امروز به حضور او بیایید متشکریم که امروز هم با ما بودین عزیزان از دیگران هم دعوت کنید که در این دوره با ما همراه باشن تا برنامه بعدی روح خدا با معرفت و درک حکمت مشورت و قدرت و پرستش به شما برکت بده